ریه شو جان است <تصفيق> الف را قرآن کتابی است با آیاتی متین و واضح که از جانب حکیمی آگاه آمده تا فقط او را بپرستید بدانید که من برای شما حکم هشدار دهنده و بشارت دهنده دارم تا از پروردگارتان آمرزش به تلمید و به سوی او توبه کنید که از چیزهای پاکیزه تا زنده اید بهرمندتان کند و به هر که شایست کمال است کمالش را عطا کند و اگر از حقایق روی بگردانید حقیقتاً از عذاب روز بزرگ بر شما بیمناکم بازگشت شما به سوی خداست و او بر هر کاری تواناست آگاه باش آنها روی برمیگردانند تا راز دل خود را پنهان دارند اما بدان حتی وقتی جامعه هایشان را بر سر خدا از آشکار و نهانشان با خبر است زیرا او بر اسرار و نیات همه آگاهی کامل دارد هیچ ای در زمین نیست مگران که رزق و روزیش بر عهده خداوند است موقعیت و جایگاهش را هم خوب می‌داند زیرا همه در کتابی روشن آمده است او کسی است که آسمان ها و زمین را در شش روز خلق کرد در حالی که ارش او بر آب بود تا همه شما را امتحان کند و مشخص شود کدامتان عمل کرده بهتری دارید ای پیامبر اگر بگویی همه شما بعد از مرگ زنده خواهید شد بیشک بی ایمانان میگویند این جز جادوی آشکار نخواهد بود و اگر چند وقتی عذابشان را به تأخیر بیاندازیم گویند چه چیز مانع نزول عذاب شده است بدان روزی که عذابشان برسد نمیتوانند توانند آن را از خود دفع کنند و بیشک آنچرا که به تمسخور میگیرند گیرند خواهد کرد و اگر رحمتی را به انسان بچشانیم و سپس از او بگیریم، بیدرنگ معیوس و ناسپاس می شود. و اگر پس از گذشت دوران سختی نعمتی را به او عطا کنیم، بیدرنگ بانگ میزند که دوران سختی و ناگواری تمام شد و شادمانه فخر می فروشد. مگر کسانی که اهل صبرند و عمل سراسر خوبی و خدمت است. اینان، برخوردار از آمرزش الهی و پاداشی بزرگند مبادا بعضی از چیزهایی را که به تو وعی کرده ایم کنار بگذاری و دلتنگ باشی از این که میگویند چرا به او گنجی داده نشده و چرا فرشتهی با او نیامده زیرا تو یک هشدار دهنده بیش نیستی و خداوند بزرگ کار سازه همه چیز است. یا آن که میگویند او این آیات را به دروغ به خداوند نسبت میدهد. بگو شما اگر راست میگویید ده سوره مثل همین سورهای دروغین بیاورید. به جز خدا از هر کس دیگری هم که می توانید کمک بگیرید و اگر نتوانستند کمکتان کنند پس بدانید این آیات با علم الهی نازل شده و هیچ معبودی جزو نیست. آیا اکنون تسلیم حق می کسانی که خواستار زندگی دنیا و زینت آن هستند، دستاورد اعمالشان را در همین دنیا بی کم و آنها می دهید. اما آنها در آخرت جز آتش نصیبی نخواهند داشت و تمام تلاششان بر باد رفته و دستاوردشان باطل می شود. آیا پیامبری که از جانب پروردگارش دلیل روشنی دارد و زبانش بدون گواه هست؟ و حتی کتاب هدایتگر و رحمت موسی نیز پیش از این او را تایید کرده با کسی که هیچ دلیلی ندارد برابر است بدانید حق طلبان به پیامبر ایمان می آورند و هر کس از احزاب مختلف او را انکار کند و ادگاهش آتش دوزخ است بنابراین تو در حق بودن قرآن تردیدی نداشته باش زیرا مطلقا از جانب پروردگارت است هرچند اکثر مردم باور نمی کنند و چه کسی ظالم تر از کسی است که بر خدا دروغ می بیشک آنها را به پروردگارشان عرضه خواهند کرد و شاهدان خواهند گفت همینها بودند که به پروردگارشان دروغ می بستند. آگاه باشید که نفرین خداوند شامل حال ظالمان است همانهایی که راه نجات بخش خدا را بر مردمان می بندند و آن را سخت و طاقت فرسا جلوه می دند. بدانید که اینان به آخرت کافرند آنها راه فراری در روی زمین ندارند و غیر از خداوند بزرگ دوست و یاوری برایشان نیست و عذابشان مضاعف می شود آنها حقایق را نمی توانند بشنوند و نببینند آنها کسانی هستند که به زیان خود عمل کردند و تمام معبودان دروغینی که میپنداشتند از انزارشان گم میشود. مسلماً آنها در آخرت زیان زدهتر از دنیا خواهند بود. آنها که به حقایق ایمان آوردند و عمل سراسر خوبی و خدمت است، و در برابر پروردگارشان خوازه و فروتنند، بدون تردید اهل بهشتند و در آن جاودان میمانند. مسئله دو گروه با ایمان و بی ایمان چون تفاوت نابینا و ناشنوا با آدم بینا و شنواست آیا واقعا این دو مساویند؟ پس چرا پند نمی‌گیرید؟ و ما نوح را به سوی قومش فرستادیم و او گفت من برای شما یک هشتاردهنده آشکارم فقط خدا را بپرستید زیرا من از عذاب روز دردناک ناک نگرانم. اشراف کفر پیشه قومش گفتند ما فقط تو را بشری مثل خودمان میبینیم و جز جمعی ارازل کسی دیگری را نمیبینیم که از تو تبعیت کند و دیگر اینکه هیچ برتری در تو نسبت به خودمان مشاهده نمی کنیم. بنابراین همه را دروغو میپنداریم. گفت ای قوم من اگر من از جانب پروردگارم دلیل روشنی داشته باشم و او مرا رحمتی داده باشد که شما از دیدن آن آجزید چگونه می توانم شما را به پذیر حق اجبار کنم در حالی که از آن کراحت دارید ای قوم من من به خاطر رسالتی که انجام می دهم مالی از شما نمی خواهم. زیرا پاداش من فقط بر اهده خداوند بزرگ است بدانید که اهل ایمان را از خود نمی تارانم زیرا آنها پروردگارشان را ملاقات خواهند کرد اما شما را قوم نادانی نمی ای قوم من اگر آنها را از خود برانم جواب خدا را چه بگویم که کسی مرا در مقابل مجازات خداوند یاریم می کند. چرا فکر نمی کنید نمی گویم الهی پیش من است، و ادعا نمی کنم که غیب و نادیده ها را میدانم؟ و نمیگویم که یک فرشته هستم و نمیگویم خداوند خیرش را به کسانی که شما به دیده یه مینگرید عطا نکند خداوند بزرگ به آنچه در وجود آنهاست آگاهتر است و اگر چنین کنم بیشک از ستمکاران خواهم بود گفتند اینو با ما جر و بحث کردی زیاد هم حرف زدی اگر جز راست گویانی آن عذابی را که به ما بعد میدهی بیاور. گفت خدا اگر بخواهد آن عذاب را بر شما خواهد آورد در حالی که هیچ راه گریزی نخواهید داشت اگر بخواهم شما را نصیحت کنم نصیحت من سودی برایتان نخواهد داشت آن هم وقتی که خدا بخواهد به سبب عملکردتان در گمراهی بمانید اما بدانید که او پروردگار شماست و به سوی او باز می‌گردید میگویند که پیامبر این سخنان را به دروغ به خداوند نسبت میدهد بگو اگر من این سخنان را از پیش خود ساخته باشم گناهش برگردن من است اما بدانید که من از عمل کرد زشتان بیزارم و به نو وحی شد از قوم تو به جز تعدادی که ایمان آوردند کسی دیگری ایمان نخواهد آورد پس از عمل کردشان مخورد کشتی الهی را زیر نظر ما و طبق وحی ما بساز و شفاعت اهل ظوم را مکن که آنها غرق شدنی هستند و همچنان که کشتی را می ساخت هرگاه که ادی از اشراف قومش بر او می گذاشتند مسخره اش میکردند و نون پاسخ میداد همان گونه که امروز ما را تمسخر میکنید تمسخرتان خواهیم کرد و به زودی درک خواهید کرد که عذاب خار کننده بر چه کسی نازل می شود و چگونه مجازات جاودان برو چیره خواهد گشت هنگامی که فرمان ما فرا رسید و تنور جوشیدن گرفت گفتیم یک جفت از هر موجودی را سوار کشتی کن و نیز خانواده را. البته به جز آنها که بعده حلاکتشان قبلا داده شده است همچنین اهل ایمان را با آنکه تعدادشان اندک است بر کشتی سوار کن وقال لمكم فيها بسم گفت سوار شد بسم الله رمز حرکتش و توقفش است بدانید پروردگار من آمرزنده و باگزشت است در همان حالی که کشتی آنها را از میان موجهایی چون کوه می نو فرزندش را که در گوشه گرفتار بود ندا داد ای پسرم همراه ما سوار شد و از انکار کنندگان و حقیقت نباش فرزند گفت به زودی به کوهی پنام می برم شک ندارم که مرا از این سیلاب محافظت خواهد کرد نو گفت امروز هیچ محافظی نمیتواند تواند آب خدا را دفت کند مگر آنکه خود خدا را هم کند و در این هنگام موج بین آنها حائل شد و پسر از جمله غرب شدگان گشت و امر شد که ای زمین آب خود را فرو بر و ای آسمان از بارش بیست آب در زمین فرو شد و کار به پایان رسید و کشتی بر کوه جودی فرونش است به ندا آمد که نفرین بر ستمکاران باد و نوح پروردگارش را نداد داد که پروردگارا پسرم از خانواده من است در حالی که وعده تو حق است و تو بهترین حکم کنندگانی خدا گفت ای او از خانواده تو نیست او عمل غیر است و از من چیزی مخواه که بدان آگاهی نداری و تو را نصیحت میکنم که از نادانان نباشی نوح گفت پروردگارا به تو پناه میبرم چنانچه از تو چیزی بخواهم که بدان آگاهی ندارم و اگر مرا نیامرزی و بر من رحم نکنی بدون تردید از زیان زدگان خواهم بود گفته شد که ای نوح به سلامتی و برکتی که بر تو و همراهانت و بر تمامی امت هایی که با تو اند عطا کرده ایم از کشتی فرود آی. بدان امت هایی هستند که از نعمتها ها بهره میسازی. سپس به سبب عمل کردشان عذاب دردناک ما را خواهند چشید. اینها از اخبار غیبی است که به تو وحی میکنی. در حالی که نه تو و نگوم تو پیش از این آنها را نمیدانستید. پس صبر و استقامت پیشه کن که آغابت خیر از آن کسانی است که حرمت عوامر الهی را نگاه می‌دارند و به سوی قوم عاد برادرشان هود را فرستادیم گفت ای قوم من خداوند بزرگ را بپرستید زیرا برای شما هیچ خدای جزو نیست هرچند که شما افترازن بیش نیستید ای قوم من برای انجام رسالتم هیچ مزدی از شما نمی زیرا پاداش من فقط به کسی است که مرا آفرید چرا تعقل نمی کنید ای قوم من از پروردگارتان طلب آمرزش کنید آنگاه به سوگش توبه کنید تا از آسمان باران رحمت را بر شما فروری زد و بر نیرو و تبعان شما بیفزاید و چون گناهکاران از حق روی بر نگردانید گفتند ای هود برای ما معجزه‌ای نیاوردی بنابراین ما خدایانمان را به خاطر سخن تو ترک نمیکنیم و به تو ایمان نمیآوریم. ما معتقدیم که بعضی از خدایان ما به عقل تو آسیب رسانده‌اند هود گفت من به وجود الله شهادت می‌دهم شما نیز شاهد باشید که از خدایانتان بیزارم از خدایانتان کمک بگیرید و برایم نقشه بکشید و لحظه‌ای مرا مهلت ندهید زیرا من بر خداوند بزرگ توکل کرده ام که پروردگار من و شماست هیچ جنبنده‌ای وجود ندارد مگر آن که سرنوشتش به دست خداست بدانید که پروردگار من بر راه راست و درست است چون که از حق روی بگردانید بدانید که من آنچرا رسالت داشتم به شما ابلاغ کردم و پروردگارم جماعتی دیگر را جانشین شما خواهد کرد و شما کمترین ضرری به او نمی زیرا پروردگار من مراقب و حافظ همه چیز است و چون موقع فرمان عذاب ما رسید هود و کسانی را که همراه با او ایمان آورده بودند به رحمتمان نجات دادیم و آنها را از عذاب سخت و طاقت فرسا رهاندیم. به این قوم عاد بود که آیات پروردگارشان را انکار نمودند و از فرمان پیامبرانش سرپیچی کردند و گوش به فرمان هر ستمگر کین توزی بودند نصیبشان از دنیا نفرین است و روز قیامت گفته شود این همان قوم عاد است که پروردگارشان را انکار کردند از رحمت خدا دور باد آد این قوم ناسپا هود. و به سوی قوم سمود برادرشان سالح را فرستادیم و او گفت ای قوم من خداوند بزرگ را بپرستید زیرا برای شما خدایی جز نیست. اوست که شما را از زمین خارج کرد و خواست تا آن را آباد گردانید پس از خدا آمرزش می و به سوی او توبه کنید زیرا پروردگار من نزدیک است و دعاهای شما را اجابت می گفتند ای ساله تو پیش از این مایه امید ما بودی. چرا ما را از پرستش آنچه پدرانمان پدران نای میکنی، بدان نسبت به چیزی که ما را به آن دعوت می کنی مشکوکی گفت ای قوم من اگر من از جانب پروردگارم دلیل روشنی داشته باشم و رحمتش شامل حالم باشد و با این حال از فرمان او سرپیچی کنم چه کسی مرا از عذاب الهی نجات میبخشد؟ بدانید خواسته شما جزیان جز بر من نخواهد افزود ای قوم من، این شطوری الهی است و برای شما نشانه یک امتحان است. پس آزادش بگذارید تا در زمین خدا بچرد و آسیبی به آن نرسانید که بیدرنگ عذاب الهی شما را فرا می گیرد. اما آنها آن را کشتند و سالح گفت فقط سه روز در خانه هایتان از زندگی بهرمند خواهید بود. آنگاه عذاب الهی خواهد آمد و این وعده دروغ نیست و چون فرمان عذاب ما صادر شد ساله و اهل ایمانی را که با او بودند از روی رحمتمان از خاری آن روز نجات دادیم زیرا پروردگارت توانا و قدرتمند است و اهل ظلم را سیهی فرا گرفت و آنها در خانههایشان بر جای مردند آنچنان که گویی هیچ گاه در آنجا ساکن نبودند. آگاه باشید که قوم سمود پروردگارشان را انکار کردند. قوم سمود از رحمت خدا دور برد. رسولان ما برای ابراهیم مجد آوردند و سلام کردند. ابراهیم نیز سلام گفت و چیزی نگذشت که گوصاله بریان برای آنان آورد. اما هنگامی که دید آنها دست و آن قضا نمیبرند احساس بدی به او دست داد و از آنها ترسید به او گفتن نترس ما رسولان عذاب الهی هستیم که به سوی قوم لوت می رویم. در حالی که زنش ایستاده بود خندید پس او را به تولد اسحاق بشارت دادیم و پس از اسحاق به یعقوب گفت وای بر برمن چگونه فرزند آورم در حالی که زنی پیر هستم و این شوهرم نیز سال خورده است این واقعا چیز عجیبی است. گفتند آیا از کار خدا تعجب می کنی؟ در حالی که رحمت و برکات او بر شما اهل این بیت نازل شده است بدون که خداوند ستودنی و قابل تمجید است و چون ترس از ابراهیم زایل شد و الهی را گرفت شروع به مجادله با ما در مورد قوم لود کرد ابراهیم بردبار دلسوز و گوش به فرمان خداست ای ابراهیم این چونین سخن مگو امیدی به نجات آن قوم نیست زیرا فرمان عذاب پروردگارت صادر شده است و به زودی آنها را عذابی دعف نشدنی فرا هنگامی که رسولان ما نزد لوت آمدند از آمدنشان ناراحت و پریشان شد و گفت امروز روز سختی است قوم لوت به سرعت نزد او آمدند همانهایی که از قدیم الایام کارهای ناشایست می کردند لوت به آنها گفت ای قوم من اینها دختران منند و برای ازدواج با شما پاکتر و مناسبترند از خدا بترسید و مرا نزد مهمانانم خجد نکنید. آیا یک جوان مرد در میان شما نیست؟ گفتند، تو خود خوب میدانی هیچ میلی به دختران تو نداریم و میدانی دانی که چه می خواهید. گفت، ای کاش، در مقابل شما قدرتی یا تکیگاه و پشتیبانی محکم داشتم. رسولان گفتند، ای لود، ما رسولان پروردگار تو هستیم. آنها هرگز به تو دست نخواهند یافت پس در نیمه شب را بردار و راهی شو و هیچ کس از شما به پشت سرش نگاه نکنند فقط همسرت میماند که اون نیز دچار همان بلایی خواهد شد که آنها می‌شوند زمان عذاب آنها صبح زود است آیا صبح نزدیک نیست و انگامی که فرمان ما رسید دیارشان را زیر و رو کردیم و بارانی از سنگ سجیل پیوسته برانها آنها باراندیم سنگهایی نشان شده که از جانب پروردگارت آمدن بدان که این سنگ ها از هیچ ظالمی دور نیستند. و به سوگ شهر مدین برادرشان شعیب را فرستادیم در حالی که می گفت ای قوم من خداوند بزرگ را پرستش کنید زیرا برای شما جز او خدایی نیست و در پیمانه و ترازو دستکاری نکنید تا کم فروشی کرده باشید. من خیر شما هستم و بر شما از روزی که عذاب احاتتان کند بیمناکم. ای قوم من با پیمانه و ترازو عادلانه عمل کنید و روی کالای مردم ای مگذارید تا قشرا عدا نکنید. و در زمین تباهی و فساد به راه نیندازید بقيه الله خیر لكم ان كنتم وما سرمایه الهی که خداوند برایتان باقی گذاشته برای شما بهتر از هر چیز دیگر است اگر ایمان داشته باشید و بدانید که من نگاهبان شما نیستم گفتند ای شوهی ای آیا عباداتت تو را مأمور کرده تا خدایانی که پدرانمان من ترک کنیم و یا آنچنان که می در اموالمان من تصرف نکنیم حالان که ترا بردبار و خردمند می شناسی؟ گفت ای قوم من به من بگویید اگر از پروردگارم دلیلی روشن داشته باشم و با آنکه او مرا رزق و روزی نیکو میدهد چگونه میتوانم با امر او مخالفت کنم اگر شما را نهی میکنم برای این نیست که خودم بهره مند شوم هیچ قصدی ندارم مگر اصلاح شما آن هم در حد توانم و توفیق من فقط با خداست او توکل میکنم و روی سوی او میآورم ای قوم من مراقب باشید دشمنی و مخالفت با من شما را وادار به کاری نکند که دچار سرمشت قوم هود و قوم سالح و قوم لوط که زیاد از شما فاصله ندارد بشدید از پروردگارتان آمرزش به طلبید آنگاه به سوی او بازگردید که پروردگار من بسیار باگذشت و با محبت هست گفتند ای شوهی بسیاری از چیزهایی که میگویی نمیفهمی ما تو را در مقابل خود ناتوان میبینیم و اگر قبیلت نبود بیدرنگ را سنگسار میکردیم بدان که هیچگاه بر ما پیروز نمیشدیم گفت ای قوم من آیا من نزد شما از خداوند بزرگ قویتر است؟ آیا خدا را به همین راحتی پشت سر انداختید؟ بدانید که پروردگار من بر کردتان احاته کامل دارد ای قوم هر کاری که میتوانید بکنید من نیز کار خود میکنم به زودی خواهید فهمید چه کسی را عذاب خار کننده فرا میگیرد و چه کسی دروغ گوست. پس انتظار بکشید من نیز پا به پای شما چشم دراهم و هنگامی که فرمان عذاب ما رسید شعیب و کسانی که با او ایمان آورده بودند به رحمتی از خودمان نجات دادیم و اهل ظلم و ستم را سیهی فرا گرفت و آنها در خانه بر جای مردند چون که گویی هیچگاه در آن دیار نبودند اهل مدین از رحمت خدا دور باد آنچنان که قوم سمود از این رحمت دور بود و موسی را با آیاتمان و دلیل روشن فرستادیم به سوی فرعون و درباریانی که از فرمان فرعون اطاعت می کردند حالان که فرمان فرعون خردمندانه و روشدهنده نبود فرعون در روز قیامت پیشا پیش قومش حرکت کرده و آنها را وارد آتش می‌کنند و آتش چه بد آبشخوری است که وارد می‌شود هم در دنیا و هم در آخرت نفرین در پیشان است و چه بد متاعی به آنها داده شده است این از اخبار شهرهایی است که داستانشان را برایت نقل می‌کنیم شهرهایی که برخی هنوز پابرجا هستند و برخی ویران گشتهاند. بدان که ما به آنها ظلم نکردیم بلکه آنها خود برخیشتن ظلم روا داشتند و انگامی که عذاب پروردگارت آمد خدایانی که به جای الله میپنداشتند داشتند توانای نجاتشان را نداشتند و چیزی جزیان بر آنها نیافزودند. و معاقضه تو این اینچنین است وقتی بخواهد شهر ظلم پیش ای را مجازات کند مجازاتش شدید و دردناک است بدانید که در آن است برای هر که از عذاب قیامت میترسد همان روزی که همه در آن جمع می شوند و کاملا مشهود است و ما آن روز را به تأخیر نمی مگر تا زمانی معین روزی که چون بیاید هیچ کس بدون اجازه خدا حرف نمی زند. در حالی که برخی مردم سعادتمند و برخی نگونبختند. اما نگونبختان جایگاهشان آتش است و برای آنها ناله زار و فریادهای دلخراش است و تا آسمان ها و زمین پابرج در جاودان آن جاودانند جز آنچه پروردگارت بخواهد زیرا پروردگارت هرچه بخواهد همان کند. اما سعادتمندان، جایگاهشان بهشت است و تا آسمان ها و زمین تا بر جاست درانجا جاوداند جز آنچه پروردگارد بخواهد و این عطای پایدار است از آنچه که اینها میپرستند در شک و تردید فرو مرو آنها چیزی جز آنچه را که پدرانشان میپرستیدند نمیپرستند ما نیز سهم آنها را بی و خواهیم داد به موسی کتاب دادیم اما در اختلاف شد و اگر تقدیر و قول پروردگارت نبود بیشک کارشان تمام بود زیرا آنها در حقانیت آن در شک و تردیدند بدان که پرورد جزای عمل را کاملا میدهد زیرا از عمل آنها باخبر است پس همان گونه که امر شده ای استقامت کن. هم تو و هم کسانی که همراه تو روی سوی خدا داشتند و از عوامر الهوی سرپیچی نکنید زیرا خداوند نسبت به عمل بیناست و به ظالمان تکیه نکنید که آتش شما را فرا خواهد گرفت. بدانید غیر از خداوند هیچ دوستی نخواهید داشت و کسی شما را یاری نخواهد کرد و الصلاة الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين و نماز را به پایدار هم در ابتدای روز هم در انتهایان و نیز در ساعاتی از شب بدان که خوبی بدیها را از بین میبرد. این پندی است برای آنان که پند می گیرند استقامت کن زیرا خداوند پاداش نیکوکاران را زایع نمی کند پس چرا در میان مردمانی که قبل از شما بودند به جز اده اندکی که آنها را نجات دادیم خردمندانی نبودند تا مردم را از فساد و تباهی نعی کنند بدانید کسانی که ظلم کردند به دنبال لذتهای دنیوی رفتند و گناهکار شدند و پروردگار تو هیچ شهری را که مردمش مسلحند به ستم نابود نمی چنانچه پروردگارت می‌خواست، خواست همه مردم را یک امت واحد می‌کرد. حالانکه که همواره گوناگون خواهند بود مگر کسی را که خدا رحم کند و برای برخورداری از رحمت خلقشان کند بدون که کلمه پروردگارت بر این قرار گرفته که جهنم را از جنیان و آدمیان ناسپاست پرخواهم کرد. هر داستانی از اخبار پیامبران بر تو میخوانیم، برای این است که قلب تو را آرام گردانیم تا در راحت ثابت قدم شوی. و در این داستانها حق و پند و تذکر برای اهل ایمان است به کسانی که به حقایق ایمان ندارند بگو هر کاری که میتوانید بکنید ما نیز کار خود را میکنید شما چشم به راه دستاوردتان باشید ما نیز منتظر میمانید و غیب و نادیدهای ها و زمین از آن خداست. و تمامی امور به او باز می گردد. پس او را عبادت کن و بر او تبکل نما بدان که پروردگارت از عمل کردتان قافل نیست ولله غیب السماوات والارض و الیه ارجع الامر کله فعبده و توکل <ماربك> ما ربك بغافل النعمه تماما بلند مرتبه برو ازی